بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس في الإطلاق والتقييد باب تنجم در موضوع إطلاق والتقييد مطلق مقيد إذا قتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند الإلهي فالحكم مطلق زماني كي بسند شد اكتفا شد در جمله بر ذکر مسند و مسند اله فقط پس حکم مطلق است موقعن زید قائمون یا زیدون قادمون اینجا مطلق چه و اذا زید علیهما مما يتعلق بهما او با احدهما فالحکم مقیلون و زمانی که بر مثند اله و مثند این هما به م و مسند اله برمیکرده. و زمانی که اضافه شد بر دو چیزی که متعلق به آن هست او به احدی هما یا متعلق به یکی از آن بود یا متعلق به مسند بود یا متعلق به مسند اله بود. کل حک بو موقع حک مقید است. او موقع حک چسب است. جلو ترباه مسلم يا والاطلاق والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقيد الحكم بوجه من الوجوه. إطلاق جاء مباحشك مقيد كردا حكم بوجه أزوجوه قصد نقدت. والإطلاق يكور حيث لا يتعلق الغرز بتقييد الحكم بوجه من الوجوه وإطلاق جائبي باشد كي یا بقوني بي جائبي باشد كي بمقايد کردن حكم كي مقايد کردن حكم بوجه از وجوه قصد نگرده نباشد حدف نباشد لیذهب السامع فیه كل مذهب ممکن تا برود شنونده به هر مذهبی که میخواهد هر برداشتی که ممکن است هر راهی که امکان دارد پس اطلاق جایی است که مقید کردن حکم به هیچ وجهی قصد نش... هدف نشده باشد تا شنونده به هر راهی که ممکن است برود حالا در امسلی جلوتر همه چیز مشخص میشه البته اینو خودمون در اصول خودمون همونه این بحثمون مثلا با که من میگم شما برده ای آزاد کنید این مطلقه آره ولی اگر گفتم برده ای مؤمن آزاد کنید این میشه چی؟ مقایت بله و تقیید حیثو یتعلق الغرزو به بوجه مخصوص لو لم يراعى تفوت الفائدة المطلوبة تي قد اشتواشين والتقييد حكم ين ادامي همون ما قبل ين واب واب عدفين قفتمون والاطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرز بتقييد الحكم بوجه من الوجوه ليذهب الصابع فيه كل مذهب ممكن این در مورد اطلاقا. گفت اطلاق جایی از که تعلق نمیگیرد به بقیت کردن حکم اطلاق جایی است که بقیت کردن حکم به هیچ وجهی هدف نباشد تاشنونده به هر راهی ممکنی برود تاشنونده به هر راهی ممکنی برود نسبید بسالی که ایجا توضيدها دي موتلاكشوا. مقياس. بعالي. على إدامة وابحرف عطف. الله دارتشير توضيح بده. تأقيده. والتقييد حيث يتعلق الغرض بالتقيده بوجه مخصوص لو لم يراع تفوت الفائدة المطلوبة. والتقيدهم جائ. تقييد حكم جايز كمقياس. كرده حكم بشكل مخصوص. هدف باشد لولبی و که اگر اون شکل یا اگر اون قید رایت نشود تفوت الفائدت المطلوبه اون فائده ای که مطلوبه گوینده بوده است فوت میشه اون فایده مطلوبه از اون چی؟ فوت میشه اگر قید و حسف کنیم اون فایده مطلوب چی میشه؟ از دست دیره لغو بیشه چی میشه؟ لغو بیشه پس تقیید جایی است که بقید کردن حکم به شکلی ویژه هدف باشد که اگر اون قید حسو شود اون فایده برد نظر از دست میره فوت میشه ولی تفصیل ها به هیل و برای یا در تفصیل این اجبال اجبالی گفت مثلا رو مفصل بحث نکردوش نه؟ میگه در تفصیل این اجوال میگوییم این در تقیید یکونو بالمفایلی اونجا گفته بود که اگر ما مقاید کنیم با به این چیز است. حالا در مفصلان توضیح ده که با چی چیزی چی میشه؟ مقاید میشه بعد از این که اومد مطلق و مقاید رو توضیح داد بعد از این که اومد چرا توضیح داد؟ مقاید بله حالا داره میگه که با چیزی در زبان عرب مقید میکنند مطلق خود با چی چیزی در زبان عرب چکار میکنن؟ ولی تقیید یکولو يكو بالمفاعلی و نحبها تقیید یا مقید کردن میباشد به وسیل مفعولها به وسیل چی؟ و نحبها و امثال شد و نواسخ و موسیله نواسخ نواسخ کانه و اخواتش تو نحبی نار خودی ما اینه و اخواتش زنه و اخواتش و مقیه چی بودند افعال مقاربه بله خاص. تقیید کردن به وصیل مفهول ها جا به وصیل نواسق جلوتر همه اینا رو توضیح میده و به وصیل شرط و به وصیل نفع و به وصیل توابع خبون توابعی که در نفع خودی خبون توابعی که اصلا این بحث کلش نحوی و اصولیه که قبلا خودی با یا به عبارتی دیگر بگیم بلاغی و دهوی که در اصول کاربورد داره بهترشیده و غیر و چیزای دیگه پس مقید بودن میگه مقید بودن یا مقید کردن انجام دیگه با مفتول ها نواسق، شرخ، نه توابه و غیر ظالب که تمام اینها رو خوده اینجا کرد بعدا نشر میکنه. خب پس اول مفاعی ابتدا میاد در مورد چیا بحث میکنه مفعول ها و نحوها ها و امثالش و مانند مفعول ها یکور بالمفاعه از التقیید فالتقیید بها يكون للبیان دو الف تقیید کردن به وسیله مفعول بی باشد برای بیان کردن دو فعل او ما وقع علی یعنی چه فعل برش واقع شده او فی یا فعل درش واقع شده، او ادله یا فعل به خاطرش واقع شده، او به یا فعل به اون واقع شده است. انواع مفهومها رو دیگه گفت، انواع چیارو گفت؟ خوب. پس، اما الب و نحوها او گفت که مقیع قید به چه وسیلی بیاد بر مطلق؟ به وسیله مفعول بعد از این و بعد مال مفعول ها رو توضیح شروع شروع کرد فالتقیید و به هایکون لبیان نو الفیل تقیید کردن به وسیله مفعول بی باشد برای نوع فیل این کدوم نوع مفعوله که نوع فیل بیان بیکنه؟ مفعول مطلق مفعول مطلقه ماند جا از ایدون ذهاب الکسلانی ذهب از ایدون ذهاب الکسلانی نه شاید انجوری نیست ذهب زرب از ایدون ذهبان بله بیشه اینو ها گفت ذهب از ایدون ذهبان شدیدن پس بله اما بفع بفعول ها و نوعشونو داره بیان میکنه فا تقییدو بها یکونو لبیان نوع الفیل مقید کردن به وسیله مفعول یا برای بیان نوع فیله که همون مفعول بطلقه او ما وقع علیه یا برای بیان کردن آنچه که فیل برن واقع شده است خودون نوع مفعوله که فیل برش واقع میشه مفعول بهیه دیگه مفعول بهیه که فیل برش واقع میشه مالند نصر تو زیدن نصر تو زیدن یا توی شبوس البرای کدوم بسال آورده خفزت القرآن اینجا حفظ بر قرآن انجام گرفته است حفظ برچی انجام گرفته است پس مفعول مقید کردن به وسیله مفعول بی باشد برای دو فعل یا برای آنچه که فیل برش واقع شده است که مول مفئول بیهیست او فیه یا مفول درش انجام گرفته مانند صبت و یوم الجبوه صبح و یوم الجبوه انتی او یا مفئول بخاطرش یا فیل بخاطرش انجام گرفته است بانت قبط اجلالا لزیت تو اجلالا لزیت خب و پنجمیرش او به بقارنتی یا این که فعل همراه با آن انجام گرفته است فعل همراه با آن چه شده است که همون مفعول معهوست شبوس البرائه بجزير بصالي آور داست <تصفيق> بالي مفعول مفئول باهو وطريق المدينة صرت وطريق <تصفيق> جئت والكتابة جئت وال <تصفيق> بيش هزار دو پس یکی از راه های مقید کردن مطلق در عربی چی هست؟ بهوسیله مفعول هاست شما موقعی که مفعول میاری مقیدش میکنی چه کارش میکنی؟ مقید میکنی اگه بگی ذهب تو خب این مطلقه اما اگر بگید ذهب تو یوم الجمعة بله مقیده به روز شد پس مفعول ها رو مختصرا خیلی مختصرا توضیح داد اگر یکی از این اگر یکی از این قیود چی باشه حس بگرده اون غراز دیگه حاصل نمیشه او غراز حاصل نمیشه خب ادامه بحث او بیان المبهبی من الهیته و ذات یا دیگر چه هست؟ یا اینکه بیان میکند بی حالت و هیئت مبهم رو حالت و هیئت چی رو حالت که به وسیله حال دیگه حالت به وسیله چی؟ ضربت قائما زحبت راكبا جئت ضاحكا مسرورا إلى آخر خب ينبود أز هيئات ينبود أز شيء فسرافق أهم بكل أز هيئات. وهم والذات او بیان المبهمی من و والذاتی یا بیان مبهم میکنه بی از حیعت و از ذات ابحام در ذات همون تمیزه همون چیه؟ مثالی که آورده است منجه در پاورقیه کتابه شما که شرح داره چی آرده؟ قیبتو؟ بله اینجا این نفسا آورده قید رفع ابهام شده از چه الذات او بیان عدم شمول الحکم یا فراگیر نبودن حکم بیان میشه یا چی چیزی بیان میشه؟ فراگیر نبودن حکم به وسیله چی؟ فراگیر نبودن حکم به وسیله عدف استثرا بیتونه انجام بگیره و قیدهای دیگر پس تا اجرای کار اومد گفت مفعول ها و نحوشون چون ابتدا گفته بود تقیید به وسیله مفعول ها انجام میگیرد این مفعول مفعول مطلق, مطلق مفعول به مفعول فی مفعول لهو مفعول معهو حال اینها رو انواع ها رو بیان کرد و گفته بود و نحوها و نحو مفعول ها چی چیزی نحو مفعول ها؟ مثل مفعول های حالو تمیز آورده بود حالو چی رو آورده بود؟ تمیز رو کی أو بیان بله یا بیان کردن فراگیر نبودن حکم بیان کردن فراگیر نبودن چی اونجا پایل مثالی آورده است کدوم مثال آورده است؟ خوب فاینک مانند دجا رجل، یرادل و عالم دقت کنیت بانت لجاهلی رجل عالم خوب اگر آلمون را نیاورده بود فراگیر بی بود چی می بود حالا که عالمون آورده خاص شد چه شد بله یا مثلا به اصول استسلام میشه فراگیر نبوده رو اولی که فراگیره کارش کرد که فراگیر نباشه باقی که ما بگیم کل طلاب جایزه بگیرن جز غائبین جز چه؟ اینجا هم پس یا بیان کردن؟ فراگیر نبودن حکم این هم قید میکنه این هم یک از القيود محط الفائده وقيدها جای فرود آمدن فائده است وقيدها چی جای فرود آمدن فائده يعني قيدها قیدها در والكلام بدونها كاذبا او غیر مقصود بالذات ولام بدون قیدها یا كاذم هست یا مقصود بذات نیس نحن وما خلقنا السماوات والأرض وما بینهما لائمین وما خلق نکردیم آسمانها وزمین وما بین آنها را اگر این لائمین هست هسلائمنچه هس برداشته بشه. اون موقع کلام دروغ بگرده و غیر مقصود بگرده. ما چی مقصود. غیر مقصود بگرده. و ما خلق نسباعوات و الأرض و ما و ما خلق نکردیم آسمانها و زمین و ما بین اگر لایبی رو برداریم کلام چی میشه؟ دروغ میشه. در حالی که ها خلق شدند. و ما ها و زمین رو خلق نکردیم. مقصود. خالق شونا كارديم لائبين خالق شونا كارديم كي بس قيد محط فائدها جاي فروضا مدن فائدك و جاي و اما النواسخ فالتقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معاني الفاض النواسخ كالاستمرار او الحكاية عن الزمن و التوقیتی به معین فی ظله الى آخر قبلا گفته بود که تقیید یا به وسیله مفعولها انجام میگیره یا به وسیله نواسخ مال مفعولها و آنچه که بانند مفعولها بودن توضیح داد الان رسیده بشه به نواسخ خوب و اما اما نواسخ تقیید با نواسخ منظوره تقیید با چه؟ اصلا نواسخ چه هستند؟ اینا رو خودیم تو نه از اجروبیه بگیر تا بالاترش کانه و اخواتش زنه و اخواتش که بشون میگن افعال قلوب کانه و اخواتش حروف بشبه بلفل اینا از نواسخ بودن ما ولای شبیه به لیسه ما ولای شبیه به لیسه هلا راسينيم در بحث التقييد بوسائل نواسخ. أما النواسخ، أما أما نواسخ، فالتقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ. مقيد صختا بوسائل نواسخ براي أغراضي بباشد، براي أهدافي بباشد، كمعانيه. واجه های نواسخ الفاظ نواسخ اون معنی رو ادا می کنند. اما مقید ساختن به وسیله نواسخ برای اهداف و اغراضی می که معادی الفاظ نواسخ اون رو ادا می کند متوجه شدید؟ خب چطوری توضیحش بیاد در هر یکی کل استمرار مانند مستمر بودن مانند چه؟ اول حکایتی انزمن فی کانه مانند مستمر بودن یا حکایت از زمان در کانه یکی از نواسخه که یکی از چه؟ شو اینجا دقت داشته باشید باقی کانه برای خود الله سبحان بکار بیره معنی استمرار رو بیرسونه معنی بگیم انه کانه علیما حکیبه مثلا یا علیما قدیره خب اینجا اینجا کانه چرو رو استمرار رو چی رو بیرسونه یعنی علیم بودن الله همیشه همیشگیست قدیر بودن الله متعال همیشه گیست. یا این که کانه حکایت میکنه از زمان. حکایت میکنه از چه؟ واقعا ما کان زیدون جالسان یعنی زید قد چی بود؟ بیچسته بود. بله. پس باری دیگر توجه داشته باشید بگی نواسخ مقید کردن به وسیله نواسخ برای اغراضی می باشد که معانی الفاظ نواسخ اون معنا رو ادا می کند اون معنا رو ادا می کند یعنی به همون معنایی که الفاظ نواسخ او رو مقید می گردوند متوجه مطمئن شدید؟ بعد. ما در قبل از نواسخ قبل از چی یک مبتدا داریم و یک خبر مثلا بگیم زیدون قائمون زید ایستاده است زید ایستاده است ولی اگر کانه رو روش بیاریم نواسخو یا زنده رو روش بیاریم زندن تو زیدن قائمان یا حروف بشمهه رو بیاریم اینا مقاید میشن چی میشن مقاید به چه معنایی مقاید به همون معنایی که اون لفظ ناسخ اون معنی رو ادا میکنه مقاید به همون معنایی که اون لفظ ناسخ اون رو میکنه ادا میکنه بله کاره چه معنایی داره نسبت مسند مسند اله به مسند طبقه همون معنا طبقه همون معنامش بالن کانه که برای استمرار یا برای حکایت از زمانه یا برای چیه و التوقیت بزمن معین فی ظله و باته و اصبحه و امسا و امحه و همچنین وقت گذاری کردن به وقتی مشخص وقت گذاری کردن به وقتی مشخص در کلماتی بانده ظله و باته و اصبح و امسه و امحه دقت داشته باشید در ابتدای توضیح آورد که گفت نواسخ مقید میشه به وسیلش و برای اغراضی میشه که معانی الفاظ خود معنا رو ادا میکنند کانه رو آورد گفت برای این معنا و و باته و اسبحا و امسا و امحا برای چه غرضی می همون غرضی که معنی این کلمات می مثلا زله وقت در روز می رسوند در شب اصبحه در صبح امسا در بیگاه. امحا در چی وقتی؟ در چاشتگاه در چاشتگاه حالا دقت داشته باشید، دیگه الان داره روی معانی این لواصق بحث میکنه. روی چی شد؟ معانی, شد؟ معانی شد. در رابطه با معانی کانه حرف زد الان دیگه, دیگه که زل و بات و آسم و آمص و آمحا مکاید میکنند وقت رو. مکاید میکنند چرا؟ اون هم وقت گذاری در وقتی خاص. وقت گذاری در وقتی که موقعیت ما میگیم با تا زید قائمان جب قیدش کرده که ایساده زید کی بوده در شب بوده موقع ما بگیم اصبح بک رود مثلا در وقت چی رو داره برمی کنه؟ صبح. صبح رو پس و توقیتی به زمان معین و وقت گذاری کردن به زمانی مشخص در چه کلماتی؟ در کلماتی دلو دل باتو اصبحو امسو ابها او به حالت معینه تقفی دابه یا مقید کردن به حالتی معین یا مقید کردن وقت به حالتی معین در دامه باننده بادامه زیدون آلمان که مقید به حالت معین است و اون هم دواب علم هست دواب چه است؟ علم هست والمقاربت و مقاربت و دیگه چه؟ یعنی در ذکنه بودن در چه کلماتی؟ در کانه و کروبه و اوشکه اینا رو افعال قلوع افعال مقاربه هم میگوین پس کانه که از افعال ناقصه بود ذله و باته و اسبحه و امسه از اخواتش بودن دامه هم چلید. كادو كربو او شكا از افعال قلوبها ست ويقيد في وجداء والفاء ودراء وتعلماء و يقين در افعال برد وجداء والفاء ودراء وتعلماء ويقيد در در، وجد، الفا، درا و پس تمام اینا مقید می کردن به معناي خاصی مقید کردن به معنای خاصی همون چیزی که گفته بود مقید کردن به وسیله نواسق برای اغراضی بی باشد که معنی اون الفاس اداش می معنی اون الفاظ چکارش می اداش ادایش یک جایی مقید کردن خاطر غرضی دیگر است همون غرضی که معنی اون لفظ به ما اون لفظ ناسخ به ما می در کانا غرض چیزی دیگر است در کاده چیزی دیگر است و در وجده چیزی دیگر است الازشی آمان آمان. آره اما دانسان شمید آئی ما یا بحث بود توی معالی معالیه بکاری رویه اعراب شن نداری باری و هلو بجرن و بگه هبی جوری قیاس بگیرو برو و هبی جوری قیاس بگیرو برو پرس دیگر دیگر شد بیگم اما مقایت کردن به وسیله نواسخ تقیید کردن به وسیله نواسخ برای اغراضی بی باشد که معانی الفاظ نواسخ اونو ادا بی اونو چه میکنند؟ کنند؟ ادا می کنند ام. که اومد توضیح داد، مثلا کانه برای چی هست زله برای چی بود دامه برای چی بود کاده برای چی بود و الی آخر و اما شرط، اما شرط فالتقییدو بهی یکورو للاغراز اللتی تو ادبیه معالی ادوات شرط مقید فاختن به وسیله شرط میباشد برای اغرازی که برای هدفهایی که معالی ادوات شرط آن رو ادا میکنند. همانطور که در نواسق بود اینجا هم همون معالی رو که ادوات شرط ادایش میکنند، تقیید کردن. برای همون اقراض می باشه برای قبول اقراضي که ادات شرط اون معنا رو ادا میکنن ادات شرط اون معنا رو چیکار میکنن که زمان تیبتا و ایانه مانند زمان در متا و ایانه از ادات شرط و کما رو ادا کنند متا و ایانه زمان رو چه معنایی رو ادا میکنن بابوسا زمان رو في و مکان فی اینه و ان نو ومعنى المكان دار اينا والنواحيثما والحال في كيفما واداكاردن معنى حال دار كيفما واستفاء ذلك وتحقيق الفرق بين الادوات يذكر في علم النهر وكامل مدن ان البحث ومحقق مدن فرق بين الادوات الشعر در علم النهر بحث بشيء ذكر بشكل متواجه شديد بار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وإذنبه وإذنبه يفرق هنا بين الإذ وإذا ولو لاختصاصها بمزايا تعد بالوضوح البلاغة درياء در كتاب بلاغي تنهاء تنهاء و ما یفرقو هنا بین این و ولو لاختصاصها ها بمزاید تعدو بالوجوه البلاغ و فرق یا تفاوت دارد در اینجا بین این در بحث یعنی در بلاغه بین این و اذا ولو بخاطر که مختص هست هر یکی از اینها بمزایای که این مزایا اسیمهای به بحساب بیاند اصیبه‌ها چه به صد به شورده بیشان؟ پس این نوکته رو گفت. دقت داشته باشید. گفت که واستفاده از آنکه وتحقيق الفرق بین آدواتیو ذکر فی علم بحث کامل و بررسی کامل درباره تفاوت بین ادوات شعر در چه علمی بحث میشه؟ در علم نحو، ذکرو علم در علم بحث میشه. ولی در اینجا در بلاغت چیزی که مرتبط به بلاغت هست و بحث میشه، فرق بین اعن و اضاء ولو هست به خاطر که اضاء به اختصاص دارند. اضاء چی داره؟ اختصاص دارد از زاویه علم بلاغت از زاویه چی تاسو اذن را يفرقو ها هنا بين اد و اذا ولو لاختصاصها بمزايا تعد بالوضوح البلاغه بخاطر که مختص هستند بزایایی که از سیبه های بلاغت چوبرد میخوان ف اد و اذا لشرط في الاستقبال اول فرق شوال با هم دیگه چی فرق شبین هست که این و اضافه برای شرط در آیده بکر میرون شرط در چی؟ آیده ولو لشرط فی الماضی اما لو ها؟ فی الماضی بله ولو لشرط فی الماضی ولو برای شرط در چی بکر میره؟ در ماضی بکر میره والاصل الاصل فی اللفظی ان يتبع المعنى اصل در لفظ این هست که پیرو معنا باشد. اصل در لفظ همین است که لفظ با پیرو چی باشد؟ پیرو معنا باشد. لفظ پیرو چی باشد؟ بله. چرا این جمله رو اینجا آورده است؟ خاطر این که بخواهد این دکتر بید. بید. و جلوتر توزید بیده بیگه فا یکونو فعلا و ایضا پس در نتیجه فعلا مزارعا بی باشد همراه این و ایضا چون این و ایضا برای چی معنی بکر بی رواند؟ موزیم برای آینده بیگه این و ایضا لو برای بار بیگه پس در نتیجه فعلا که همراه با این و ایضا هست با ایچی هست بال، بزاره است. چون اروایذا برای چی معنا ای کار می‌داره؟ بزاره. پس بی باشد فل بزاره همراه با اروایذا. و ماضی آن معنی و فل معذبی باشند همراه با لو نحو و ای استغیث و ای استغیث یغاثو بیاید كالبوه برای بزاره است. و اذا تردو الى قلیل تقنع و هرگاه به اندکی برگردانده شود تقنع قناعت میکند. کند و هرگاه به کمی از مال برگردانده شود چیکار کار کند؟ این تردو به چی برمیگرده؟ گرده؟ به نفس برمیگرده. چون به اولش اینجوری و نفس ایدار رقبتها نفس رغبت پیدا می کند هرگاه که آن رو ترغیب کنید و نفس به زیادی مال رغبت پیدا می کند هرگاه رو چکار و اذا ترد الى قلیلت تقنعو و هرگاه به از از مال بازگردانده باز شود قناعت می کند این مثال بود برای اضاف برای چی؟ برای اضافه. اما بسال برای لو ولو شاء له هدفم اگر الله خواسته بود همه شما را هدایت میکرد. اگر الله چی لو روی چی فلیومه ده؟ پس با, با اینجا که فرق بین اید و ایدا و لو رو بگه بیه در کتاب بلاغه. بحث میشه فرق ار، اضا ولو لو به خاطر این که مختص هستند هر یکی از اینها به مزایایی که اون مزایا از سیوه های بلاغت شمرده میشوند پس در نتیجه ار و اضا برای شرط در استقبال بکار میروند ولو برای شرط در مادی و اصل در لفظ همین هست که تابع معنا باشد شکری لو گاموها برای مزوری هم به کار ولی معناش موجود نه امون خاص کے بارے میں خب روی روی بیان عمل بیان والفرق بين و ان الاصل عدم الجذب بوقوع شرط باعد فرق بين إن وإذا رو ألعب بيكي فرق بين شرو بيكي فرق بين إن وإذا إذا إذا كي أصل أنت الأصلة أدب الجسدي بوقوع شرطي بعيد فرق معنائية إينا رو در درزر داشته بشي يكي أزول جهة زبان يكي أزول جهة زمان بود که اذا و این برای استقبال بودند ولو برای چی؟ <تصفيق> خلا فرقای دیگر در نظر بجید و الفرق بین این و اذا ان الاصل ادم و جذب بوقوع شرط معا فرق بین این و اذا است که بر اساس اصل ادم و جذب بوقوع شرط معا اینده عدم جازمیت هست به واقع شدن شرط همراه بال همراه با چی باعل یعنی شرط باعل زمانی است که انجامش در آینده یقینی نباشه انجامش در آینده یقینی جذبی نباشه اگر تو بیدونی که این کار آینده به شکل جذبی رخ نمیده شرط با چی به کار میبریم با این با چه حالا دقت کنید و بین ار و ایدا ان الاصل عدم و فرق بین ار و ایدا این هست که بر اساس اصل عدم جذبیت هست به واقع شدن شرط همراه با این نه. عدم الجزم به وقوع شرط معایده عدم جاذبیت عدم یقین به واقع شدن شرط همراه با چی؟ با اینه هست و الجزم به وقوعیه معایده یا قاطعیت با وقوع شرط همراه با اینا. همراه با چی؟ yeah. تو میدونی که این چیز آینده به شکل قاطیت روخ بیده اون موقع با ازا شرط بیده yeah. با چش بگویی؟ بای الان خودش مثالان رو بیاره و لهذا غلب استعمال الماضی با ازا به خاطر اینه که استعمال الماضی غالبا با ازا بکار بیده ازا جاعت الساعة ازا جاعت الساعة دیگه بهبین خاطر است خاطر این فرق بین این و ایزاست که فعل بازی اغلباً با کدوم کاربرد داره. ازا. با ایزا چون بازی روخ دادنش یک چیز قطعیه یک روخ دادنش یک چیز قطعیه فکان شرط فکان شرط بل پس گویا که شرط فعلا هم واقع شده است پس گویا که شرط فعلا عملا واقع شده بر این فا فاذا قلت دقت داشته واشی خودش بیاری بگه زمانی که تو بگوی این من ندمرزی اتصدق به الف دینار اگر خوب شوم از مریضیم هزار دینار صدقه بیده اینجا کنت شاکن فی تو شک داری در که درست بشی یا نشی ولی اگر شک نبود قطعی بود باشی به بکار میرفت با ازا و اذا قلت اما اگر اینجوری بگی ازا برئ تو بالمرضی تصدقتم ازا برئ تو اگر از مریضیم خوب شوان صدقه بیدهم خوب چه زمانی اینجوری با ازا بکارش میبری یعنی زمانی که تو یقین داری خوب بیشی زمانی که تو کنس جازبا به تو اینجا جازب هستی او کل جازبی یا معنی کسی هستی که قاطعیت داره بایل شک دارد و علا ذلك فالاحوال نادرتو تذکر في حیز این والکثیر في حیز اغاق متوجه شده بنابر این و علا غالب بنابر این فالاحوال نادرتو تذکر فی حیز اده حالاتی که نادر هستن کم رخ میدهند در, در چارچوب این ذکر میشود در چارتوبة چي چيزي؟ ايضا والكثير في حيز ايضا وحالاتك زياد رخ بدهت در چارتوبة؟ ايضا ومن ذلك قوله تعالى أذوب لكي ذا يقول الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه زمانی که است نزشان دیکی جان؟ بله با قاطیت بیگویند که این بالکیه؟ از ماست و ایت تصیب اما اگر بدی به آنها برسه یا طیرو بی و منبعه اون موقع بدفالی بی بوسه پس دقت داشته باشید بنابراید حالتهایی که کم اتفاق بیفتند در حیز ایده ذکر میشه و حالاتی که بسیار رخ میده در حیز چی ذکر میشه؟ ایده ایده ذکر میشه بیکی که همیشه گیست فا ایده خوب الحسنه و اذ تو و اذ تو سیبه سیئه پس از اون جایی که فرارسیدن رسیدن دی کاری و عمری ضروریست بله. خب بریم جلوتر فلی کونی بجیء الحسنتی محققا بخاطرین که اوبادن دی چه هست محقق هست از المراد وگه ها مطلق و الحسنتی الشاملی لانواع که کما یفهمو من التعریف بعلی الجنسی زیرا که منظور از آن یعنی منظور از دیکی مطلق دیکی شامل هست که انواع زیادی رو شامل می شود همانطور که از الافلام جنسی که ك... الافلام تعريف جنسی که سر الحسنه همه دست ازش فهمیده بیشه ذکر معا اذا در نتیجه با چیزی ذکر شده است الحسنه همراه با اذا فاذا اذا الحسنه و ابر عنه بالماضی و با چی ازش تعبیر شده است فیل ماضی فاذا اذا الحسنه قالوا لنا هاده و اخفی کنی کنی بیاید میگویدی است چرا با اعضا کار رفتید؟ چون قطعا و یقینا نیکی امری چ هست؟ محقق است. امری محقق است. چقدر جالب فرق بین اعضا و اینو داره ترسی باز هم بگو بولا است که بلاغب در نبی خود خوب و لکون مجیع سیئه نادره بیگه چون مدیخ کم پیش بیاد با این اومده با چی اومده؟ و انتصام هم سیئه و کدوم اومد؟ این کم پیش بیاد بله و لکون مجیع نادر و بخاطرین که سیئه نادر پیش بیاد از المراد به ها نوع مخصوص کما یفهمه من التنکیری و هو جد چون منظور از اون نوع مخصوصی از سیئه هست حواد تر که از نکره بودرش فهمیده بشه که بود چه؟ خشک ساریه بود چه؟ ذكره على با عین لزو حبره با چی ذکر شده؟ با علم و عبره عربی بالمضارع وباتل لفظی ازش تعبیر شده؟ گزاره ففیل آیتی بالوصفه بامکار نیابی و شدت التحامل علی ابوص علیه السلام بالا یخفا باره. دیگه در آیه دیگه چه چی چیزی وجود داره دیگه در آیه این چیز واضح هست که نعمتهای فراوانی رو چکار بیکردن انکار بی کار و با بوسا چکار بیکردن ظلم بیکردن و بر بوسا ظلم بیکردن ففل آیتی اینو خود دویسندگان گفتند میگه ففل آیتی به وصفه به انکار نعبی و شدت تحاملی تحاملو علا موسی علیه السلام مالای اخبار در آیه این چیز بسیار است یا پوشیده نیست که بسیار دیمت ها رو اینکار بی و بر موسی چی کار بی کردند ظلم بی کردند ففل آیتی اگر ترجمه لفظیش کنم یکی بشه در آیه این وجود داره که آیه اینا رو وصف میکنه که انکار بیکردن نعمت ها رو و ستم بیکردن بر موسا مالای که این چیز در آیه پوشیده نیست باره. خب خیلی چیز قشنگی رو تاییز توضیح داد در فرق بین ال و ایدا بله بگه این برای اون چیزایی که قطعی نیستند در شک وجود داره و اذا برای چیزایی که وقوعش جذبی و با متوجی شدیدی این چیزو؟ بخاطر این که اذا اکثراً با فعل بازی بکار میره درسته به معنی آینده هست چون اذا برای معنی چه؟ باقی بگه اذا جاعت الصاعه معنیش زمانی که قیامت بیاید. اذا زلزله الارض و زمانی که زمین زلزله بشود ولی چرا فعل ماضی با اضافه به خاطر این که همانطور که گذشته برای با یک چیز قطعی است، گویا که انجام این چیز قطعیت داشت یعنی معنیش اینه که قیامت مانند گذشته آمده است همانطور که گذشته رد شده است قیامت حتما بی آید باید ولو لشرطی فیل فیل ولو برای شرط در بازیست پس فرق بین لو این و اذا این بود که لو برای بازی بود این و اذا برای آینده فرق دیگه اللحاظ بعنایی بین اذا و اید. این بود اون توضیح داد حالا مدر روی لو ولو لع للشرط فیلم ازی برای شرط در و لذا یلیها الفعل الماضی بخاطری که سرش فیل بعضی بیاد بعد از اون یلیها یعنی بعد از اون آمدن یعنی بعد از اون فیلم بیاد نحو ولو علم الله فيهم خيرلا اسمعهم اگر الله درآن خیر میدانست می دید اونها رو بیش باره. و به ما تقدم یعنی و المقصود بالذات من الجمله شرطیه هو الجواب و از که گذشت دانسته می شود که هدف اصلی از جمله شرطیه جواب است مقصد اصلی آنچه که مقصود بوده است بذات از جمله شرطیه چه هست؟ جواب هست فاذا فا قلت زمانی که تو بگویی، این اجتهاد از ایدون توهو اگر زید اجتهاد کند اکرامش بیکنند کنت تبخ برند به انکس ان توکری برو تو این خبر رو میدهی که چکارش بیکنی اکرامش بیکنی ببینید از آن که رد شد دانسته میشود که هدف اصلی از جمله شرطی که جواب هست زمانی که بیگوی اگر زید تلاش کند اکرامش بیکنم توی جا در واقع خبر میدهی که چکارش بیکنی؟ اکرامش بیکنی ولیکن في حال حصول اجتهاد لا في عبوب الاحوال اما چه زمان؟ زمانی که اجتهاد حاصل بشه زمانی که اجتهاد در احتمام حالت اگر زید قبول شد براش دوچرخه بیخرم چه زمان براش دوچرخه بیخری؟ زمانی که قبولی حاصل بشه و یتفرعو علا ها و انها و ارشاریتن به اعتبار جوابها تمام این مقدمه رو گفت تا این رو بگه بیگه فرقه بیشه نتیجه این است که جمله شرطیه از خبریه برده میشه. یا از ارشاییش رو مرده میشه با توجه به جوابش اگر جوابش خبری بود اون موقع با خبریه اگر ارشایی بود جواب اون موقع ما بگیم چیه؟ این برای تقییم کردن نوعش که آیا خبریه یا ارشایی با کدوم قسمت نگاه میکنیم؟ جواب شرطو نه که فعل شرطم. جزا رو نظامی کنیم چی جواب و جزا رو نکه فیل شرط چطوری؟ مثلا اینجا دقت کنید من بگم ارجعت ارجعتری اکرمک اگر پیش من بیایی اکرامت میکنم اینجا آی ارشایه هست یا خبریه؟ آیا جوبل شرطی, جمع شرطی ایجا خبریه بود چرا؟ چون او که فعل بزاره و فعل بزاره از خبریه حالا ایجا دقت کنید ارجاکا بکرون فاکر اگر بکر دونه اکراب کرد باره ترس اینجا چی شد؟ جمله با انشاء با توجه به با توجه چه حکمداری با توجه به جوابش با توجه به بعد دیگه چیشو نگاه نمی کوری ما فعل شرطو نگاه که با که خبریه یا انشاءی با فعل شرطو نگاه نمی کونی بلکه جوابشو نگاه میکنید بعد کیشو نگاه میکنید بله و, و ابد لافیو پس شرط رد شد گزاره رد شد دیگه چی رد شد نواصل مفعول ها رد شدند بحث, بحث مقید کردن نتیم که مقید می شود با مفعول هاون رد شد با نواسخ رد شد با شرط رد شد الان رتیدی به منفی مقید کردن با نفی با چه؟ و اما نفی اما مقید کردن با وسیل نف به بهی یکولو لسل به نسمتی الواجه مخشوصد ببا توفیدهو احرف نفی تاقیید کردن با وسیله نف بی باشد با صلب کردن نسبت به شکلی ویژه به شکلی خاص از آنچه که حروف نفی اون رو افاده می کنند و هستتون و حروف نفی تا هستن لا و ما و این و لن و لم و لمبا لا و ما و این و لن و, و لمبا پس نفی به وسیله فتقید و بهی کردن به وسیله نفیه به وسیله چه؟ یکونو لسلب نسبتی علاوه چه مخصوص میباشد برای سلب نسبت کردن به شکلی مخصوص من آقا سلب نسبت میکنم بگم زید عالم نیست یا این خوب نیست اون خوب است دارم سلبت چه میکنم؟ سلب نسبت کردم به شکلی خاص همان طوری که حروف نفی می میکنند همانطوری که خود حروف نفی چه میکنند؟ افاده میکنند که دا هستند هر یکی از حروف نفع که چطوری سلبه نسبت میکنه اینا رو توضیح میدهد فلا لنفع مطلقا لا چطوری سلمه نسبت میکنه؟ مطلقا یعنی برای بازی، مزاره، حال ها. فلا لنفی مطلقا لا مطلقا نفع میکنه؟ و ما و ا و با برای نفی حال به کار می‌روند ادخل لا المزاری، اگر با و بر بزار وارد شود اگر ما و اد بر بزار وارد شود بر برای نفی حال دلالت می‌کند برای نفی چی ولاد لنفی الاستقبال ولن برای نفی استقبال دلالت می‌کند و چرا نگفته اندخل علال مزارد چون این برای دیگران وارد نمیشه چون لن بغیر از مزارد برای دیگران وارد نمیشه و لم و لم ما لنفی الماضی لم و ما برای نفی کردن ماضی به کار میروند نه یعنی که برای منفی کردن ماضی ها بلکه برای معناه ماضی دلالت میکنن لم و ما سر ماضی نمیانده سر چی میاد؟ سر بزاره میاد ولی دیگه لدف یل بازی بازی رو نفی میکنه یعنی نفی گذشته رو میکنه نه برای منفی کرده له بازی ها اشتباه نفهمید نه معناش میده نه عمل نمیکنه نه و بحث نه نه رو بگذار بگزا کنار ببین اجالا کاربوردا کاربوردا رو داره توضیح بده معنی موزیش میکنه بله مع بله لم و لما فعل مزاره رو به معنای بازی منفی میکنه بله. به معنی چی میگونم لذا دیگه برای نفی بازی کاربرد داره برای نفی چی گذشته باگ دیگه لو یعنی سور زد یعنی گذشته رو نفی میکنه دیگه که زید یاری نکرد بله ولی این احتمال داره که عنده خب خب این دو توضیح بیده فرقه لب به لب ما رو که با این فرق که لبا انسحاب داره یا کشیده می شود تا زمان حال تا زمان سخن گفتن تا چه زمانی؟ به واقع ما میگیم لب با یقب زد یعنی هنوز تا الان زد بلند نشده. نفیش تا چه موقع است؟ تا هنوز تا زمان حال و تکلمه الا ادو بلاما یا صاحب او على زمان تکلم با این فرق که یا مگر این که با وسیله لبما تا زمان حال یا تا زمان تکلم کشیده شود و یختصو بالمتوقع و همچنین لما مختص. اون چیزی هست که مورد توقع هست مورد انتظار هست مثلا یکی از تو بیپرسه که زید نمومده از شهرستان تو این توقع رو داری که بیاد ولی حلوزه نمومده بگی لما... یا ج... هنوز نگومده ولی این انتظار که بیاد هست بله. آیه زید رفته یا نه کسی از تو میپرسه هنوز نرفته ولی تو انتظار داری که بره چی میگی میگی لم هنوز نرفته پس لم و لم ما هر دوتا برای نفی ماضی بودن با این فرق که لم تا زمان حال دا ادامه دارد و آیندهش در انتظار هست و علا ها و فلا فلایو قال بر این اساس گفته نمیشه لما یکم زیدون سنبقا نهی ساده است زید سپسی ساد این جمله اشتباهه. چرا اشتباهه ما بسته بخاطر این با بگیم لما یکم زید این تا زمان حالو می رسوله چطوری بعدا سنبه رو آورده به حقیقی میگیم لمبا یک زد زد هنوز نه است تا چه زمانی وقت اید سادم نفی تا ادامه داره نفی ایستاده زد تا زمان تکلم ادامه داره به من میگم لمبا یک و یعنی تا الان زد نه ایستاده است به حقیقی برای لمبا ایره بعدن بنامونی بگم صمت سپس ایستاد این برای چیه؟ تزاهد توپشه هست باطله ب kroه با خاطر این؟ گفته نبیشه این جمله اشتباهه ولا لم یستبیع النقیزات این جمله هم اشتباهه که بگیم هنوز دو نقیز با هم جنب نشده چرا این جمله اشتباهه چون لم معنی آینده رو بی رسوله که درست تا علی کار نشده ولی توقع هست که آینده بشه آیه بگه آینده دو تا نقیز میتونه با هم جنب بشه؟ پس این جمله اشتباه در بیان ولا لم یستبیع النقیزات هنوز دو نقیز با هم جنب نشده‌اند دو تازده روز با هم جمع؟ هم آرده هم نمیتونه جمع بشهد با لاما نمیتونه بگیم امرو با لاما نمیتونه لام لام بگیم چون لاما تا زمان تکلم نافی بیکنه و تواقب رای آرده هست تواقب برای آرده تما یقال آن يستاد، يستاد. چون که گفته بیشه لاما یقوم ثم بقال لاما اصطاد صفت اصطاد بجوری درسته چون لاما یقوم فقط نافی گزشته بیکنه نافی چی ب تا زمان حال, حال نه لم نفیه گذشته میکنه ولی در تا زمان حال نه تا زمانه لما تا زمان حال میکنه لذا ما نمیتونستیم بگیم لما یقوم سمبقام اما برای لم میتونیم بگی برای لم لم یقوم سمبقام نه ایسا بود ولی صفت ایسا صفت چکار کرد؟ ببینید معنی شی بال فرق لما و لب لم. اگر من بگیم لما یقوم سمبقام ده لا ایستاده بود سپس ایستاد اما با بالا ماجوریه لما یقب مقام هنوز نه ایستاده سپس ایستاد ایراد <تصفيق> اشتباهه دوومی خب و لم و لم یجتمع بتونی میگی بالا به اشتراک جذب نشدن ولم یجتمع انجام نشد بله یعنی اندر قذ ف ا لما في نفي تقابل قذف الاثبات پس در نتیجه لما در نفی کردن در مقابل قد برای اثباته همون طور که قد همون که قد در اثبات چه معنایی داره؟ لما در نفی همون معنی رو داره موقعی که بگیم قد نصاره یعنی به تحقیق یعنی کرده برای ماضی قریبه برای ماضی چیه ؟ اینه لما هم برای مزاره برای مزاره منفیه برای ماضی منفیه که قریب هست برای باضیه سر مزاره یاد ولی الهاذ معنایی میدما برای ماضی قریب که به معنای چی قریب هست یعنی دافیش تا قریبه بیکنه. تا قریب و نفی میکنه تا قریب چکار میکنه نفی میکنه همانطور که قبل در اثبات برای قریب هست وحیدا ایدی یقورو بنفی یوها قریباً بدن حال در نتیجه منفی کردن به وسیله لما تا نزدیک حاله تا نزدیک چه ام. فلا یصح لا با محمد فی العاب الماضي که بیگی دعاواده از محمد در سال گذشته آخه بابا این لما نفی کنه تا زمان حال تا زمان که در حالی که عام الماضي مازی دوره بازی چه ام. پس لا با قد در اثبات چه معنی رو داره؟ قد نصره با لما ینصر در مقابل هم قرار میان طور که قد نصره یعنی به همور زوده یاری کرده لما یعنی تا حلوز نیستاده هست همون نزدیک و معنی چی رو بیرسونه؟ نخی در نزدیک بایل منفی کردن به وسیله لمبا قریب به حال هست قریب و دچاره به حال هست. و اما توابه، اما مقید کردن به وسیله توابه رسدیم. فتحید و ها یکول ل الاغراضی که تقصد می‌دهد موقیت کردن با وسیله توابه بهول اغراضی که از اول توابه قصد شده است. فدعت یکول ل مثلا دعت برای تمیز هست. با چرا دعتو بیاریم و مقید بیکریم؟ برای تمیز و تشخیص دادن منعود بانند این که بگیم حضر زیدون العالی بود اینجا با نعت تو آوردی برای تمیز و تشخیص کی؟ زید برای تمیز و تشخیص زید دیگه برای چی؟ نحن روحا علی الکاتب، الکاتبو مانده حاضر شد علی کاتب علی کاتب چی شد؟ و الكشف و نعت دیگه برای چی کار بیره؟ برای کشف کردن و آشکار کردن حقیقت منعود حقیقت چی؟ مانده الجسم الطویل العریز و يشغل یشغل من الفراق جسمی که طول دارد پهنا دارد و عمیق هست جایی از مکان خالی رو پر میکنند جایی از مکان خالی رو چکار میکنند؟ پر پر میکنند این صفات آوردین برای الجسم برای این که حقیقت جسم رو چکار کنید؟ کار بله سه سه یعنی و چه و تاکیدی سه تاکید پس هست چه هست؟ تاکید هست دحو تلکه عشرتون کابله اولا دهتای دهتا کابل هستن عشرتا کابلتون صفاتش هست این کابلتون اومدیم تا تاکید کنیم که دهتا هستن تا تاکید کنیم که چه هستن؟ والمدح چار مدح هست دحو حبر خالد الهمام خالد دلابر حاضر شد خالد سخاوتمد حاضر شد و زم و فرجمی زم هست نکوهش هست مانند امرأتو حمالتالحته زنش کشنده خیزم است خب اینجا حمالتالحته اومده است تا صفتی هست در مزمت زنش در مزمت زن ابو لحب بعد. پس بگید مقید کردن به وسیله توابع برای اغرار هست که اون اغراضی که قابل مورد قصد قرار قرار گرفتن هدف می‌دانیم. مثلا نه نه چیکی استوابه هست گفت برای چی این کار میره و اتفاقاً بیانی یکولی برای جرده توضیح اتفاق بیان فقط برای توضیح میاد. نحو اقسم بالله ابو حفص عمر سوگند خورد به خداوند سبحان ابو حفص عمر ابو حفص عمر عمر اینجا عطف بیانه نقش عمر اینجا چه هست؟ عطف بیانه عطف بیان شبیه به صفته فرقش با صفت اینه که عطف بیان همیشه جا کی عطف بیان جامل. جامل؟ یعنی آموم حرکت یعنی زبانی که بافرت باشه جابه این عطف این عطف بیانش اومره. ببین ابو حفص اوبر ابو حفص بود اومره. باقی جا عبیرالموبلی اومر. نقش اوبر عطف بیانه. بعد عبیر بشه فاین. عطفش با عبوه حرکت عبوه نه اون عطف نساق دیسا. این عطف بیان می‌گوید که شراب مستقلیه. عطف بیان با عطف نسق و عطف معطوف که با حروف عطف میشه فرق میکنه اینو بهش میگن ف بیان نه همینا که عمر گفتین اعرابی ابورو نگرفتینش بل بله اعراب ابورو داره بله اتفه. بله بله از توابع و اعراب ابورو داره اقسمه بیشه فعل ماضی مبنی برفت فتح بی لا جار و مجرور مطلق اقسمه ابو بیشه فائل حفصه ضاف الیه عمر میشه عطف بیان هم. بله اول توضیحی بعد المدح پس عطف بیان برای توضیح بیاد البته این تفصیلات بیشتری داره در کتب نهوی خب اونجا حتماً می‌خورید مخصوصا که شما الان دارید قطر الندى رو می‌خورید با فقط در انداز کتاب توضیح میدید عطف بیان یا فقط برای مجرد توضیح هست مانند اقصى بالله ابو حفص عمر اول توضیح بعد یا یعنی اینکه هم توضیح میده و هم در کنار توضیح دادن میکنه چگار میکنه؟ مانه دیگه که جعل الله الكعبت البیت الحرامه ببینید؟ گفته قرار داده دا است الله متعال کعبه را بیت حرام را اینجا الكعبت که بیشه مفئول البیت بیشه عطف بیانش بیشه چیش؟ بار الحرامه دوباره صفت البیت هست پس اینجا اتف بیان هم توضیحه و هم ماده و یکی فی توضیح ایوام دو حسانی الاول این دل اجتباعی و در توضیح دادن همید کافی که دو بی عمالی رو واضح بگرداند. فوقعی که ما گفتی باقصه مدلله ابو حفص امر امد گفتی ابو حفص کیه و امد گفت کی باعلی و این لم یکن اول داح منه افرادی. افر اگر که واضح تر نباشه از اولی به هنگام تنهایی اگر که دوبوبی از اولی به بشک شکل تنهایی واضحتر نباشه مانند علی زیل العابدین خب زیل العابدین از علی واضح تر دیست ولی دوبوبی بیا اولی رو چکار میکنه واضحش میکنه. چه کارش میکنه؟ وَالْأَسْ جَدُوَ پس کافیت در توضیح دادن که بوبی بیاد اولی رو واضح بکنه زبانی که با هم جمع بیشوند. اگر چه که به شکل تنهایی از اولی واضح تر هم نباشد. همانطور که در سال اقسم بالله ابو حفص عمر خود که در این مسال عمر برای توضیح کوریه آورده بود ابو حفص کوریه هست دیگه نه اون الفازی که ابو با اوب دارند شو بیگد کوریه خوب و اطفر نسقی و یکی دیگر از بقید کننده ها چه هست؟ یکی دیگر از توابع اطف نسق هست یکونو للاغراز اللتی تو ادیها احرف الاطف آت‌هناسه برای اون اغراضی است که حروف عطف اون اغراض رو ادامه می‌کنه می‌رسونند. که ترتیب معاد تعقیب فلفا معنی ترتیب همراه با تعقیب در فا و تراخی فی سوما و تراخی در سوما معنایی که فا می‌رسونه هم ترتیب همراه با تعقیب یعنی در پیش اومدن. اما سنبه برای تراخیه با فاصله هست با چه هست؟ با تراخ و فاصله اگر میگیم جا زیدون سنبه بکر بلا فاصله نمیشه او دش بلا فاصله دیست. اما اگر میگیم جا زیدون فبکرون اینجا این که هم ترتیب رو میرسونه و همین که بلا فاصله بودن شروع و البدل یکونو لزیادت تقریری و ایزاه و بدل برای چی بی باشه؟ برای افزودن توضیح دادن بدل برای افزودن چی بی باشد واضح کردن یعنی بدل بیاد تا اون توضیح رو که اوبده است واضحترش بکنه چش بکنه وا بدل و التقرير والايضاح وبدل برايه إضافة كردنة روشدي و توضيح إيضاح ايضاح دستر توضيح او زها يوضح ايضاح اوضح يوضح ايضاح در اسم بود او او باب كه واو به صاحب ما قبل منصوب با يا تقدير بله بانند قدیب ابدی علی یون آبد پسرم علی خب این بدل با علی بدل کل هست پسر با علی بود کامل یکی هستن من موقعی میگم برادرت بکر اومد اینجا بکر بدل کل از برادره اتواج شدید؟ بدل کل این رو که بدل و مبدل به کامل یکی باشم و صافر الجد اغلبه سفر کرد جد اغلبش خب اینجا صافر فیلماتی از جد فائلش اغلبه بدل از جد ولی کابل جد نیست اغلب جد یعنی بدل بعض بدل چی جز یا بعض فی بدل البعض اینو بگن بدل بعض و نفعری الاسطاب و البح نفداد استاد اصطاب علمش بیر بیش گات بدله اشتباهی بدله اشتباه اگر نه کلش باشه و نه بعضش باشه بلکه یکی از اون بلازمات اون چیز باشه بشه بدله اشتباه باشه مانند اینی که بگیم 10 دت برابر زید بعد از که بالاش این میشه بدله اشتباه 10 دت زید برا کتابش میشه بدله اشتمالی دیگه بدله به جز نمیشه برله تا ای کار این درس کافیه نواس و بایت باشه.